دوستی دوستی عیب فدا جون و دلم جون و دلم سر در قدم تو ننهم باسق جلم دشمنی وقتی زده دل نو بره محبت میفره رنگ آفتا میپره رنگ آفتاب میفره اون که دل میفروشه ارزون به خدا بیتبره اگه اون at mimun behtar nabu? Nabu? خونه نمیره نش نیدیش چی گفت قرار نیست هر چیزی که چاوش گفت کش کنم تا حالا که قراری بود قرار احترام این بوده نه قرار حق عقلت میگه الان گوش نکنی بری میدون باید منتظر ستا نه پس اون الان میدون بیا نیست پس این میدون چی کار؟ میدون نمیره میرم سر خود باهاشم چه باری؟ سرطور عوض شدی آراز عشق آدم عوض میکنم صبور میکنم دیوونه! نکن! بایستا! قیلی از مسئله من گذشتی آراز آراز آراز واس بحیات باز میشه اگه عشق صور رو اتن کرده اگه برای رسیدن اون به هم صور رو اتن کرده عشق به دعاشم رو گفتم من الان درم سراغ ستار چابوش کنم یه سوال یه جواب باشه باش تو دانشگاه تو فامید همسایه دوست آشنا هر وقت حرف حرفی میشد از ازدواج و زندگی و خواستگار اینه اون با هم در بارش حرف میزدن ولی من فقط یه چیز رو فکرم این که اینا هی خواستگار میبینن و رد میکنن تا بالاخره یکی بیاد که خوششون بیاد و بگم بعد ولی من سال که یکی پیدا شد و بهش میگم بله تا بزارین دعوها بخوابه این شهرها بخوابه چند سالش مهم نیست مهم نه که یکی هست که من میخوامش همه این سالها تو هم منو میخوستی دیگه آراز دلداری رو میخوامم یه حساب کتاب قدیمی که به قول بابا کریم میخوام چورکه بندازم ببندمش بذارمش کنا سوالم مشخص جواب مشخص بده هم میخوام بدونم این قبری که این همه سال براش گرگه کردم توش مورده بوده یا نبوده بوده پاش امنا فسا مطمئنشم همین سالا بهش دبا برام نگذشت من و تو تمامم خوب تماممشم باشه باشه Na ja oi سلام سلام زشنی سادم مادرشو بفرسته شندم به خیر گذاشت بیا خونه دستت بشه بیا رو بگو بیاد بیرون خاله پیرنتم که خونیه که بارم ستار خاله ستار خیلی خواه من ستار شما تاج سر خسته نشدین انقدر تارافتی که باره کردی اگه من تاج سرم خب بیا تو دیگه ماما بیا تو زنگ زد گفت امشب خونه حنیف میمونه انار داری فکر کنم داریم خون از آراز رفته چند تدونه انار بیار دوره هم بشینیم دون کنیم تشم اینجا چی که می اومدم دیگه خام چرا نرفتی هنوز؟ چرا آراز و با چاقو زدیم؟ تو سرسوز بود قسم به گره هم می کود گره هم می زد به کمرش راستشو می گفت چاوش خجالت می کشید زایه زدم که شلوخ شد بلد بودم اجری بزن بوده تا با که یه قطر بخیر بشه آویده آراز؟ نمی دونم اینچه نمی دونم ای با هم نایمده نه. رفت سراقه ستا تو هم گذاشت ازش گذاشت روابط مردونه این شکلیه دو سر سوختن شدن چاقوکون عربده دبه عدبیتتون همینه دیگه نه درکتون نمی کنن بابا کریم نیست بدر اینطوری نبود دایی این, دا این نیست یه شماها ها مرد نیستی روابطشو ولد نیستی یا اومد کدومه نظرات یعنی چیز آراز گذاشتی Käivõi inimene sumaud ei ole. می‌خردم. بچم کوله من بلندم مسامتشین بگذارم سرچ خوب شه. همه چی. عمو telemanager. یازا هاشو رو کردی از وسط که من اصلا نمی‌فهمم چی داری میگی. کیوا دوستا منغد کردی. کیو چاوش را پیدا کرده. به بچه گفتم خون کف حجده رو بشورن با چی شستن آقا کریم رستان خون با خون نمی شورن ستار تنبه. آتیشه اما چاهو به دست نیست باباش نزاشت می فهمی؟ از دبه تو راست خون دادی شستن که بیا اینا رو به من بگی آره؟ بدونی کجای دنیا به درد کریم بوستان میخوره اونجا که بچهش تو چشمش نگاه کنه جز راست خیلی چین اگه ستار راست میگفت که نزده سوسکه داشت دیوار میفت بلا مادرش گفت قربون اون دستو پای بلوریت برم من حالا بپرس کجای دنیا به دردم نمیخوره دنیایی که پسرم توش دروق بگه نه مالش نه زمانش نه طولش نه عرضش پدردم نمیخوره چند سال دویدم تا ثابت کنم سه دونگه اینجا حق منه آنمش رسیدم این نفت کف این زنین بمون نیست فردا پس فردو اگه ثابت شد ستار آرازو زده دروغ گفته میام این مالو، این حق و عمرو آتیشو آتیش. این که زنم آتیشش مگر اینکه تو یا حرفی، یه کلمه، یه شاهدی، یه چیزی رو کن که ستار زده رو کن رو کن که ستار زده به ولای علی همین الان آتیشش میزنم خودم هم ماهی میزم با ستش میزوزم چون سزا پدری که بچه بد ترمیت کرده آتیشه من مفتی قرمون لسقای بلوری بچم نمیرم بچه باید بچه باشه آقا چه باش. بچه باید درست باشه با کریم روستان اولون دستبای برو ریش کرده اگه ثابت کردی خبرم کن بیا سهممون آتیش بکش من سهمی به جا نمیارم به جا میاری یادم دادن حق گرفتانیه با همون دل و جرعتی که بلدم میتونم از مال دنیا بگذرم چشم بپوشم با همون دل و جرعت خدا شاهده میتونم وایستم حبقه با بگیرم یادت بگونه آتیش و هیزون نه حق کریم بذار نه آخرت خود من صحبت ها یا اینجا باید میسیم او رو با میسپرم به تو که خب من شریکی به جونه میارم واسقهی میخوام میخوایی پسر حاجبدری رو رسفا کنیم فرق من و شما همینم هم. شما درختی؟ ها حسیرم عبایی از این ندارم که درخت نیستم عبایی از این ندارم مردونگیم به لرزه مخصوصم باید پای خونه داداشم وسط باشه خون که ریخت کم و زیاد نداره ریخته خونه ریخترم با آب نمیشورن با خون میشورن من شریکی به جا نمیارم دیوار هاشام بلنده ولی میدونم شما نمیذاری آراز تو محکمه قسم دروغ به قرآن بخوره میذاری آخ کریمه بوستان وقتی پای مال دنیا وسط باشه میذاری پسر حاج بدری دست به دروغ رو قرآن بذاره براخره درستی گفتان حسیری گفتان ko i باشو بیا بابا جون بیا این لباسه رو بگیر راحت شیم راحت بشی بیا بیان آل خونه اکبرو سر سر اولی عزیزم اخی آه یه خود این روی کرش کن آها باریکالله حالیکالله بسر خوب بیا. یادت شبایی که میومد این خونه ما موقع رفتن چه جیگو دادی را بینداختیم که نه بابا ما میخوام بمونم من میخوام بمونم میخوام با سطر بازی کنم میخوام با لیلا بازی کنم حالا امشب بدون وحانه میخوام ازت بمونی وقتی هم که میموندین اون وقت زنون مردونش میکردیم شما فسقلی ها میرفتیم بیش مادراتون من و باباتم دو شک مینداختیم کنار همو میخوابیدیم چودم من و بابات با هم حرف میزدیم خیلی حرف ها میزدیم بیرو دربای سی فقط موقعی که حرف پول و حساب کتاب پیش میومد نگاه نمی کردیم چون <تص> موقع حساب کتاب و اینا یه خوده شرم میکردم تو رو هم نگاه کنیم حیات چیزی نیست که یه روز مد باشه یه روز نباشه حیات همیشه مده حالا اگه کسی ازش قافل میشن دیگه با خودش آجان اون کمرت که تیر خورده اگه درد داری تا اقواز نخ رو پهلو بخه پشتم رو بهت کردم تا ازت سوال کنم چون میخوام حرف پولو بزنم تو بعد بری میستی که ازت خورده برده داشته باشم یا درویسی داشته باشم اما چون میخوام از قرآن حرف بزنم میرم تو رودر بسی تو رود حرف نمیزنم اما خوب گوشات رو تیز کن ببین چی بهت میگم سه دنگ اون حجوه حق منه بابات میدونه حقمه خدا میدونه حقمه میخوام بیفتم پی حقم امشب میخوام با حد اتمام حجت کنم خودم و خودت چی گفتم؟ خودم و خودتون الله دیگه نه چابوش هست و نه ستار هست و نه آتیش بیار مرکه من و تو اولا این که ستار تو رو با چاقو نزده چی زده نمیدونم چرا زده نمیدونم صد ستار نزده کریم بعد یه اوم گدایی شب جمعه شو میشناسه کلا سرش نمیره اولادش نمیتونه بهش دروغ بگه پس اون نگفت این از این صبح میخوام برم یه عریضه میدیمیسم من تا به حال از پسر بدری شکایت نکردم و اگرم شکایتی شده صد تار دنباش بوده. اما الان او فرق کرده. چون به تو چاقو زدند. وقتی صد تار نزده چی زده که خون ریزی به نفس بوده. در این ماجرا بیخ پیدا میکنه. آو پول ارزش هیچ بیخی رو نداره. از صحب و حقم میگذرم اگه بدونم پسر بزمی میخواد تو دادگاه قسم دروغ بخوره خودشو مشغول زمه خدا و قرآن بکنه به خاطر قسم دروغ خوردن به قرآن آراز فقط من و توی بگو کریم بگو کریم از حقت بگذر چون من اگه شده تو دادگاه قسم دروق به قرآن بخورم نمیذارم دادشم خراب شد ناورد روزگار کریم به دل بگیره میخوام نباشه اون حق حقوقی که پسر بعدی رو مشغول ذبه قسم دروغش کنه اگه بگی قسم راست میخورم واقعاً راحت میخواب اگه بگی شکایت نکن چون قصب دروغ می میگم چش میخوابه من تشنه من تشنه Ota! Tehsinele! Tehsinele! Jaa, ma ei paanud. Jah, et Ta KÖD ja no, no, Kõikö Kõik põhjadu منم که وطن سنن قبرستون. چرا اوج وردار می‌کنم دایی؟ رو که تو دادها تعریف نمی‌کنن آقا کریم دوستان. سراغ رسول واقعیه. آقا جلو من. رسول پره بدن تیشرت داداش بر علیه قسم نمی‌خوره. پای قسم به قرآن بسات. چه روز زمینی اینجا خردی زمی. خاطر اینجا کشش داره؟ این همه سال لیلا فاطباسا. حالا غمت نیست بپره بره. تنہا می مانم میدونم میای با تو آرامم بیچاره سم تنهایی تنہا زخ می چون آتش در زیر خاکستر برگرد و بیا دل تنگ دیدم بوغز Tudu! o so on